قصه های هزار یک شب شب هشتم جوان جادو گشته با ملک گفت مرا گمان این بود که قلامک کشته شد پس من از خانه بیرون آمده به قصر بشتافتم و در خوابگاه خیش به خست چون بام داد شد دختر ام خود را دیدم که گیسوان بریده و جامعه ماتم پوشیده پیش من آمد و گفت دوش شنیدم که برادرم را مار گزیده و برادر دیگرم از فراز بام به زیر افتاده و پدرم به جنگ دشمنان رفته هر سه مرده اند. اکنون سزاست که من به عذابه نشینم و گریان و ملول باشم من گفتم هر آنچه خواهی بکن سالی به ما تمداری و اندوه بنشست پس از سالی گفت باید به قصرندر خانهای بنا کنم و صورت قبری در آنجا بسازم و آنجا را بیت تو لحظان نامیده به ماتم داری بنشینم گفتم هر آنچه خواهی بکن پس خانه و صندوقی بساخت و غلامک را بدانجا بیاورد که او نمرده بود ولی از آن زخم به رنجوری زیست و گفتن گفتن توانست. پس دختر همه روزه بامداد و شام به بیت الاحزان اندر شده، به زخم غلامک مرهم می نهاد و شربت و شراب به او همی خورند. تا اینکه روزی دختر بدان مکان رفت و من نیز از پی او برفتم. دیدم که می خروشد و سینو روی خود می و این عبیات همی خاند. مرا خیال تو هر شب دهد امید وسال خوشا پیام وسال تو در زبان خیال میان بیم و امید اندرم که هست مرا به روز بیم فراغ و به شب امید وسال. تو را گرامی چون دیده داشتم همه روز کنار من وطن خیش داشتی همه سال چون این عبیات برخاند من با تیغ برکشیده پیش رفتم و به او گفتم ای روز بی گفتار تو به گفتار آن زنان ماند که با مردان بیگانه عشق ورزند و با ایشان در چون مرادید که به قصد کشتن او تیغ بلند کردم دانست که غلامک را نیز من به روز انداختم آنگاه سخنانی چند به بگفت که من آنها را ندانستم و با من گفت افزون من نیمه تو را سنگ کند در حال من بدینسان شدم پس از آن به شهر و مردم شهر جادویی کرد چون به شهرندر چهار گونه مردم بودند مسلم و نصاری و یهود و مجوس چهار گونه ماهیان شدند و شهر نیز برکی آبی شد و چهار جزیره چهار کوه شدند پس از آن همه روزه دختر به پیش من آمده مرا برهنه میسازد و با تازیانه چندان زند که خون از تن من برود آنگاه جامهٔ پشمین بر من پوشاند چون جوان این سخنان بگفت گریان شد و این دو بیت برخاند گویند صبر کن که تو را صبر بردهد آری دهد ولیک به خون جگر دهد ما عمر خیش را به صبوری گذاشتیم عمری دگر بباید تا صبر بردهد چون جوان ابیات به انجام رسانید ملک گفت ای جوان به اندوه من بیافزودی بازگو که آن دختر کجاست جوان گفت بامداد و شامگاه به کنار صورت قبری که قلامک در آنجاست بیاید و هنگام رفتن پیش من آمده تن من را بهدانسان که گفتم از تازیان نیلگون کند ملک چون سخنان او را بشنید گفت ای جوان به تو نیکی ها و خوبی ها کنم که پس از من به دفترها نگاشته در زبانها بگویند پس ملک برخاست و به مقر خیش بازگشت روز دیگر هنگام شام تیغ برگرفته بدان جایی که قلامک بود بیامد دید که قندیل ها آویخته و شمها ها برف روخته و اوت سوختند و زنگی به خوابگاه اندر خسبیده بود. در حال تیق برکشیده قلامک را بکشت و به چاهش درفکند و جامه های او را پوشیده در خوابگاه او به خسبید و تیق برکشیده در پهلوی خیشتند بگذاشت. چون ساعتی بگذاشت دختر به قصر درآمد، و پسر عم خود را برهنه کرده تازیانه برو همی زد و او همین نالید و میگفت به من رحمت آور این حالتی که من دارم مرا کافی است دخترک گفت چرا تو رحم نکردی و معشوق مرا به آن روز نشاندی پس از آن دخترک جامعه پشمین بر او پوشانیده جامعه حریر از روی او بپوشانید و به نزد قلام آمده ساقر شرابی پیش و گریان گفت ای خاجه از این شراب ای بنوش و با من سخن بگو آنگاه این دو بیت برخاند سست پیمانا به یک ره دل زما برداشتی آخری بد عهد سنگین دل چرا برداشتی خاطر از مهر کسان برداشتم از بهره تو لیکنی جانا تو هم خاطر زما برداشتی پس از آن بگریست و گفت یا سیدی با من سخن بگو پس ملک شبیه زبان زنگیان و مانند سخنگفتن هبشیان گفت آه سبحان الله چون دختر آواز او بشنید از فرح و شادی بیهوش شد چون به هوش آمد گفت ای خاجه مرا امیدوار کردی آنگاه ملک به آواز هزین گفت ای hey, روز بی با تو سخن گفتن نشاید دختر گفت سبب چیست گفت از برای اینکه همه روز شوهر خود را تازیانه میزنی و او را شکنجه می کنی فریاد و ناله او خواب بر من حرام کرده اگر نه من صد بار از بیماری خلاص می شدم. دختر گفت اگر تو اجازت دهی او را رها کنم. ملک گفت او را رها کن و مرا راحت بخش. در حال دختر نزد پسر ام رفته تاسکی پر از آب کرد و افسونی بر او دمیده به آن جوان بپاشید. آن جوان به صورت نخست برآمد دختر او را از قصر بیرون کرد و گفت دیگر باز مگرد وگرنه گرنه کشته شوی آنگاه دختر به بیت و درآمد در آمد و گفت ای خاجه با من سخن بگو که پسر ام خود را از جادو خلاص کردم ملک گفت آنچه چه بایست کرد هنوز نکرده ای دختر گفت ای خاج آن کدام است که نکردن ملک گفت این شهر و مردم این شهر را به صورت نخستین بازگردان که هر نیمه شب سر بر کرده مرا نفرین همی کنند و به دین سبب من از بیماری خلاص نمیشم. دختر سخنان ملک می شنید و گمان می کرد که قلام با او سخن می آنگاه انگاه برخواسته به نزدیک برکه آمد، پاره ای از آب برکه برداشت. چون قصه به دینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است.